ز دست کته خود زیر بارم که از بالا بلندان شرم سارم مگر زنجیر موی گیردم دست وگر نه سر به شیدائی برارم مگر زنجیر موی گیردم دست وگر نه سر به شیدائی برارم ز چشم من به پرسوزا گردون که شب تا روز اختر می شمارم بدین دین شکرانه می بوسم لب جام که کرد آگه ز راز روزگارم اگر گفتم دعای می فروشن چه باشد حق نعمت می گذارم. من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم سری دارم چه حافظ مست لیکن به لطف آن سری امید باشم